بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین صل الله علی سیدنا و سویلله و آله قیبین و آقلین و لرز دائمت و عدائه نجمعین اللهم افتقنا جمیت مشترین و الحمد و رحمت و عدیب بعد در باری تارز مفهوم بود بعد از شکل مطالبی روی که مرحوم ناینی در اجرد فرموده بنا اولادی که به اجمال وزد بشیم اگر بودیم خونده بود شده در ایشان و نکات خاصی خاصی در کلماتیشان هست ایشان خلافاً نسل مسئله ترسونی در ما حالا معاصر این که بختم در مفهوم موافق اختلافی نیست ایشان برمشن بینیشد که در مفهوم محافظ جدا بحث کنن و, و نتیجه بحث ایشان در بحث مفهوم محافظ, محافظ این چونکه چوند اساسا در باقی مفهوم محافظ, محافظ اون نقطه اساسی روی مفهوم محافظ, محافظ روی این جهت آمده که منطوق و ملاحظه بکنن یعنی در منطوع اون به اصطلاح آب هزر برای تأکید برای جانب مفهوم بود مثلا اینکه گفته لا تقول لخما این نظر این بود که به هیچ نقوی از ایزا نصفاً به اون پدر و ماذر بشه اون نقوی احساسی از لا تقولین پس لذا منطوع ازشه احساسی شویه تأکید روی جانب من مفهومه یعنی منطوع رو آورده که اون محفوم روش حساب بشه این چهار روی اصاس متردن به این که در واقع تازباه ها چون محفوم به نحو اولویت مصبت کلام رو روی منطوق منطوع بارد حساب بکنیم یعنی نسبت تازباه رو از واقع منطوق بگیریم مثلا از بوف اکره خود فساق مثلا علماء رو اکره هم خود دامن علماء به الله و مسا. اظهار گفتلاق تشریف خب اگر خدامال علما رو اکرام بشن به سایه اونها خود علما تکمل العلماء. اینجا مسلم علاوه تکمل العلماء است اما نسبت تنجی به روی تکریم خدامال علما می میره. پس نسبت بین خدامال العلماء و خودسا نسبتشون اون خصوص انورشه، خادم اله فاضل باشه نشه، فاضل خادم نشه. این نسبتشون اومو پسون لایه تهاج و تارض رو به لحاظ منطوق می گیرن و من اول خلاصه مبنایشونو میگم بردیم و اما در مفهوم مخالفت برعک در مفهوم مخالفت تارض رو مفهوم می گیرن این سیر تفکر ماگونامینه که در مفهوم ماهه ما تارض رو بین منطوق و عام می بینید و در مفهوم مخالفت تعارض رو به مفهوم با عامی بی سرافتون با میشه خب ایشون از این زاویه دید وارد بحث میشه و نتیجه گیری میکنه نه نتیجهش اجمالا این میشه که اگر مفهوم موافق و نکته اساسیش منطوقه نسبت منطوق رو می سنجی به نسبت عام اگر اون خصوصاً لنگ رو سهمی که اون خصوصاً تعارض مستقره مثلا حکم خدا علما ولا تو کمیل اینجا نستمی چون اوبوس ملوشه تا دیگه دیگه برقرار میشه یعنی بین حکمیل علما همیشه که بین منطوب هست در محضوم هست دیگه فهم میکنه، کنه که یعنی حکمیل علما ولا تو کمیل هم تا چون اگه خادم آلم اکرام شده خدا آلم به طریق قوله پس اکرام قادر حالت از یک طرف لاسو کنی خصوص نشه بین منطوق هم منخوص بین محکوم هم اگر نصف منخوص منوشه خب تاروز مستقرد به قوال باید تاروز اما اگر نصف بینشون امخوص مطلع اون وقت محکوم مقدم نشه در خصوص مطلق مطلع که منطوق مقدم محکوم مقدم میشه مثلا اگر رو بحکن فساب خدام علمان فساب خدام علمان بالله سکنه فساب نسا شما خود مطلقه شما میگه همه فساب رو نکنه الا فساب خدام علمان علمان خدامی که فاسدن خادمان علمان که خادمها فاصله. خب چون نسا شما خود مطلقه قائلتا منطوع مقدم میشه یه نجیشه میشه که خصوص خادم آنه و اگر هم باشه اکرامش میشه اگر این محبوب مقدمش منطوع شد، خالقه های منطوع هم محبوب ها مقدم میشه چه این دونگیم اگر بنا شد خادم فاطقه اکرام بشه خب خدا آنه مثل یه بابولا باز اکرام باشه خاطقه خادمی که فاطقه اکرام میشه خداعالم به طریق اولا البته نسبت بین ارکمه لعلم ها لا سوکنفوس ها اون خصوص منطوق لیکن منطوع مخصوص مطلق این کلام علامه نایمی اینه این این این ای که چون منطوق اون خصوص مطلقه منطوق مقدم میشه وقتی که منطوق مقدم شد به تبع اون مفهوم هم مقدم میشه پس اکمل لعلم ها بر مثل لا ها مقدم میشه اگر عالم فاسق هم باشه اکرام بشه چرا چون گفت که خادم فاسق رو هم اکرام بکن خب عالم فاسق هم طریق اولی باشه اکرام بخواد عالم به طریق این خلاصه معنای مرحوم پس در مفهوم موافق طبقه تصور ایشان نظر اساسا منطوقه نه رو مفهوم نسر هم با منطوقه نسبتی میگیریم با منطور این خلاصی تفکره ایشان و اما در مفهوم مخالف که آلا آز توضیحش ازباه کرد نظر احتاسا در تاروخ با مفهومه نسبت با همه و لذا باید نسبت به این مفهوم رو با هم دید مثل ترون آرخوی سه رس می توضیح دیردن که اشتادی هم اما بیشون سه رس می کنن مرغوم زایی یه قسط که محکوم حاکمه مثل آیه کوی آیه نبر در یه قسط هم تاروز و مخوضو در یه قسط هم و مطلقه بین منطوق و بین محکوم دیمه سابقاً از من محکومه اینم پس بنابراین در مفهوم موافرم یه اعتبار بین منطوق و آمنه در محکوم مخالطه هم اعتبار بین محکوم و آمنه تاروز و نسبت تنجیم از واسه مرحوم نایمی مثل بقیه علماء اعلام که متعارف ماست ترون متعارف اینا رو بعضی خارجه مثالی برای مفهوم موافقت نمیزه همینجور هم مثال عرفی میارن مثال عرفی اگر خود دانر علماء مثالی از عدل شرعیه نمیارن و از کردید این مفلقی رو که مرحوم آزیان در خیلال مفلقشون که در ما هم سابقه به مناسوات دیگه از کردیم مشکل کلی ما در اصول ما داریم غیر از این حالا مثلا ما در فهم و نداشتیم یا ها مثلا شبیه خیالات و اوهام، و غیر مشکل این مشکل اینه که ما اصولا عرض ارز کردن اصول مثل ریاضیات نیست که بینان متقرگرات باشه اصول به هم مثل ثوابت هسته نه متغیرات ایا متغیرات بود خیلی راحت بود آوان. سامنه رضا میشد ما حتی اصول بود مثل فرمونه ریاضی بنویسیم. این فرمونه ریاضی چون متغیراته مثلا فرسان ها در زبان فارسی ماه شده ایک سیگری میگن عرب ها علف ده میگن علف رضاقه بمسایز با چیم آنها به هم رو آقا تحره بشیم علف رضاقه بمسایز با چیم خب این شو متغیر این به صورت یک فرمول ریاضی در میاد شو متغیر دیگه مثلا اختام جعل 5 رو بذاریم به جای ب 10 رو بذاریم میگیم 5 سر. به اضافه 10 میشه 15 به جای الف 6 رو بذاریم به جای ب مثلا 20 رو بذاریم میگیم 20 6 به اضافه 20 میشه 26 مثلا الف و با و ج متغیرن x ایگریزد مثلا اینا متقیرن. با این متقریرات شما میتونید فرمول بندی رو کنه. اما وقتی ثابت شد دیگه اون فرمون بندی نمیاد چون عزه معینی چار به اضافه ده مستویز باشیم دیگه این به عزه دیگه نداره نزده اصول از این قلیل مشکلی که ما در اصول داریم فرصان میگیم مثلا سیغی نه منبال نسان لا تفر لا تفر. این خوبه ما تو اصول این لا تفر اما وقتی فرم ما لا طبع داریم فکر اما کمه چیز دیگه هم داریم زرانده هم داریم احلالا آلده هم داریم حرامر دقیق میکنیم دیگه همش لا طبع یک مشکلیه که باید دوش فکر بشه ایسا ما در اصول این اصولی که آنگرز درست کردن حدث از این اصول این بود که مقدمه و مبانی فکر باشه زیرانه فکر باشه حالا یه اشکال دیگه هست اینا منشعبوار گفتن این من تذکر یعنی خب مثلا بگیم لاخره چه حال نگی درسه این سوشر نیست اون شکسه سین مثلا ولا تنگ هو مانع که آوارو درست از عمر من اخرم و مهاطکم از غرنا سلام سلام یعنی مشکلی که ما داریم روشنش شد. و میشنوی بله بله کی و خاله هم کلامه کامو میاد حالی خاله لات هفه ادالی نم همه شر لات مشکل کار نیست می یک مشکل کار مشکل در کتابهای درسی ما این یک مشکل یک ده در درسی ما. حالا شما یه دوره اصولی که الان واسه من خوندی ان شاء الله که اصولی مرامل و درخای و کفایه شما با خواندن یک دوره اصول صاف نیست یعنی تو فهرست استمر باقی تو گیر می‌کنه این مشکل درسیه ما در این توزیع خودمون چون اصول بنامو با این نکته راست صفحه تدوین اصول این بود که زیر بناهای فقاهت و قواعد فقاهت رو شما یاد بده شما بعد از اینکه یک دوره اصول خوندین وارد فکر بشین استنتاج بکنید ابزار کاربردی رو به شما اصول یاد بده این کارا چرا اینجوری شده که انسان یه دورو اصولم میخوده باید صفرش که ناز باید کمکش لنگی پس ما باید یه کار دیمی در همه اصول تذکر بدیم با آقای ما من در بحث سیغه نه این تذکر دادم آقا معاذب باشین ما بحث سیغه نه تو اصول میکنم اما تو فکر میکنی که همه سیغه نهی باشی خب زیاد نیست من زروربه هم داریم لاستقیه مالیسه اندک هم داریم زروربه هم داریم خب اخ... یکی... یکی نیامدن بردستی بکن مشکل نیشده شد. اینم این خودش باز مشکل تح... یعنی آنش شاید که مثل بحث مثلا فرض که من ارز کردم در مدت زمان حتی کتب اصول ما مثل کتب علام قدس الله صدر تحذیبونی ها یک بخش از کتاب تنویر علامه معانی حروفه خوشا خب تو فغوانی حروفه پیشی شما ان قالبه دیگه معانی حروفه باب اوله مغنیه رو که یکم چط میخواد تو باب اوله مغنیه اینه که اصوله ابراه خب شما تو فقهی پیشی من با الا با با میشه ترتیب هست اون پس تمام اون بحث الان ایده زیادی از کتب اهل سنت که فراوان تمام این معانی مفصله که در سیر کارایی داره برای شما نوشته علامه عناگره چون تو معالم این باب هرس شد یواشواش در اصول چیه هرس اون تو اصول احسانه هرس معانی و غروف هرس یعنی نامنه گفتنی چه برمیکنه به حیعت اقعال با معنی واق وفا بسنده باب حتی به علاق شما توی مقایی موردی واق و رو نمید و همه با هم بیاریم همه یک روح رو با هم بیاریم بیاری. بیاری. چون حیات باشه چه غروف باشه شما همه با هم بیاریم چون بلد رو فی طبعا این صحبت خوب در قدر ما یک مشکل کلی در اصول داریم و لذا من در همین بحثم رو از کردن. مثلا مرموازی ها یکی تو مورد حکم کلی بقیه به یکی که در مقام موجوده یعنی ایشان مرموازی ها این قضیه تا آرز آن با محفوح رو آمده روی موردی فرقی خلی کرده نسانسته بسید این فار اساسی مع آاضانمون دا ما ها این مقدم رو بگن مردم ناینی برخورز اواصودی شده اصلا ذابطه داده این نفی کاری اینه. هست که از اینه داین اینده به روز هستم تو بحث بود جمعبه چندنیش و ملعرض رو مثلا بعض ن گفتن اگر ماش رو مصوم به بر کار شدیم مثلا موم مقدم باششه اگه اگر به اطاحه مقدمات از یک مجرشین با هم تا آار باز بود من اینه فقط قاهیدا برای ما خیلیه. برای همین این شرطم قائم چاچینو معنا قاهیدزادنی میشه. مثلا مفهوم موافقه قاهیده نظر و منطوق به شما نسبت منطوق رو با آن نگاه بکنه. به مفهوم کارناش. اگر منطوق با هم تعارض کرد مثلا اون خصوص ملایم میشه. مفهومشون تعارض با اگر مخموم آموه خاص مطلق بود فخصیز از آموه و مخموم شد فخصیز از میکنند. این چه فهم میکنه؟ نسا در اینه اکرم خود دامن من با لسطن فصال اون خصوص منوش خادم مقدم شد اگر خود دامن علمان مقدم شد علمان. اگر این عنوان مقدم شد مخصیش هم مقدم فهم نمیکنه مفهوموشم که اکرام عالم آلم باشه اون هم مقدمه پس مرمون نایمه خوب با موندی که نشونده نایمه یه ما بحث رو از زال زادی کلی مطرح میکنه و رضا امتابن به بحث طبیعت اصولی میده یعنی طبعه بحثو رو بحث اصولی میکنه مرمون نایمه مرمون ها دیر بیشتر ارجاع به موردی و فقیلی میکنه مثلا مرمون نایمه من شون کلام مرمون فراموش رو که تمام بکنم تمام بکنم <تصفيق> شبیه در محکوم موافقت شما همیشه منطوق رو در نظر بگیرید نصفتش رو با هم اما در محکوم مخالطا همیشه محکوم رو در نظر بگیریم به این قادر کنیم گاهی محکوم حاکمه مثل آیه نفر گاهی محکوم مخصوم رنجه گاهی محکوم مخصوم هیچ نیسته قسم محکوم اگر خاکم باشه مقدم و خسو مطلقم باشه مقدم و خسو ممنوعیشون تاروزن یعنی که مرمونایی سهل کردن مردی ندارد و مهم میشینه که ایشون باید این قاعده کلی خودشون را هم تحلیل و اصولی بدن این نکته ایمان چه تحلیل و اصولی شما داریم که به ساعت قاعده کلی برمون در وقت ما محافظ شدند ورد من قبل از اینکه بازه محافظ مخالف شما از کردن این نقطهی که ما از این داریم مثالهاییش هم بند نیست اما یک مثالی مشکی که ما در اصول داریم فرماتون مثل اکنال اصابه خود دامال علماء که محبوبشین باشه اکنال علماء جمعی هم مثلا به طریق اولام درسته این مثال اما چون ما مثالهاییو که در فرم و متوقعی موردیه به این, این مثالها گاهی و گاهی این خصوصیاتی سوقها به یک جود خاصی عمل کرد آخه مشکل کارینه ببینید ما برای اینکه یک کلام زبوری داشته باشه به مجرد که تصور این خیلی نقطه لکیفی اگه دقیق به مجرد که اون رو بیاریم و تصویر بکنیم کافی نیست این باید کاربردی داشته باشه یعنی عملا باید توی جامعه تفتیم و تفتیم بشه اخوی مثال هایی از ولی لحقیم فساغ خدا ملده ما این باید مثالیست که ما این تو جامعه ما کاربردی نداره و سازه کاربرد جامعه این شمسی به درست بخوره در حیرت مهم به کار کارورد توی ایمون مخوره باید تو ارف خاص کاربرد داشته باشی که ارف فقها متشرعه باشه و کاربرد در ارف فقها متخفه هست و این که در روایات باشه در عدله باشه از در عدله تنفیه باشه کاروردی نیست مجرد مثال از اونجا در این قصر این خیلی قابل احنامیت ما متاسفانه سری شده در روز بطوری یه چیزی شبیه بیاندی که راست باشه محصر میکنه. و این خیلی مشکله این کار کاره باشن خدا خودم احمدانیم مثال ندادن میشه مثالی در من که به به ندارم این سال در. میشه یک مثالی در اینجا زد یک روایت میریم و زهن که تندشم معتبر الان تو زهن همه که قلت را عبدالله اینه امیه از تجربه الازار از تراز را عبدالله هست این مادرم هرکسی هست چیز نمیکنه ردش نمیکنه خب کنایش واضحه بعد حضرت مثلا ببینیم خب اون حدیل اینه که ازمان کرد که هست دیگه از توش مثلا شلاق زدن توش مثلا حاکم ببرند و فحاله علیه السلامه احباس ها اینو تو خونه تحت نظره هست تحت نظر نظره هست مثلا تو اتاق باشه اتاق خوف کن بیرون میری معاذباس همیشه میشه بیشه بیشه کسی باشه. باشه. با کسی باشه تنها نباشه حالا که در بیبرد دوباریه با کسی دیگری باشه برداز اونجا باشه خود اونجا باشه کسی اونجا باشه که این نهت نجول الله کاروزش در استاده هست این دقیقه احباس ها ما آقای ها. یعنی امام می فهمان اون شدتی که در باب همه رو یا با مادر هست. این باز فقیر می فهمیدیه. چون به خاطر ودود مادر بودن حالا بگه پس مقامات ارمان رو بنجن. زن خودش این به خاطر احترام مادر امام علی استان می فهمد بکن بعض از این در این کتابی که در براد فقیر نوشتن یعنی اسه اینجا از این مراد یعنی این جوش به میاد که نظر بگیر کنترل کن تو خونه باش ببین در خونه رفت کن کاری که با مرده تماس حالا که زن ریوند والدستم الله با مردی تماس نداشته مراد زندان و شهر و پیشو قاضی و اون مقامات نیست زندان زنده اونید دقت فهمید اگر این مثال حالا فرق مثال باشه در قاعده در روایت تصویح نشده تصویح قضا سواله همه ما اتفاده های کردیم اگر این مثال باشه ولی نیز خوب ده فرقه کنید. بگیم که به مردم نایمی همشنه که ایشونه قاعده کلی گذاشتن ما هم یا قاعده کلی رو بگیم بگیم اصولا محتوم موافقت چون به نحوه اولویت این اولویت اختضا میکنه که بر برای هم ولو نصف شما خوز منوش چون نهی باید نصف شما خوز تو آرز میکنن چون این لاتبالله ما افن با عدلی امر مرور لطن نصف شما خوز منوش دیگه افن نبود چی که آمان مرور روش نباشه الان مرورتان با جبشه شده نصف شما خوز بین بین عدلی امر مرور با نگذبون کرد با الله ما افن این نسبت نسبت مخصوم بنوانشه معذاره ای که امام لا تقال ما اوفه مقدم کرده یعنی که انم آنما میخواهد بفرمجه که خدا فهمش بردیدی که لا تقال ما اوفه، این اختضار میکنه خصوص مادرین خصوصی اختضار میکنه حتی نسبت ذهن رو از ممکن باید به نهر ملایم باشه هیچ نهر ایزای امانتی مثلا سنگینی، ذربی، شفنی زجر مثلا به مادر انجام نشه نهایت اینه که زیر نظر بگیر محروس باشه ممنوع تصرف بشه به اصطلاح به نهر ملایمت که مرد را محبه میگوه تماس باشه باشه خبیم ما لا تبالا ما افتبا خبیم افتا اون فهمی میگه به برادران میگه هر کی هر وقت کسی در درویه یکی که پیش مادران باشه به بچه ها و برادران بزنه خودش چون این پنافیتوز ممکن به کسافت ایچی نه به این اینجور محدودیه در مقابل اون گناه به که شلاغش در رسی دازگاه و شلاق و حج یادی کنه اگه محسن باشه رج بشه به جایی باید من کنی احباست چون مادرته من به نظر خیلی و لذا من فکر رو بکنم چرا احتمال ما ایک سویه باید داره که این بکنم اصول علم کار و رمکار احتمال اصول علم محلوه بکش احتمالی که قضیه خاصن باشه نمیشه که جذب از کنم، من اگه کنه،, کنه جذب ندارم چون تو خود را تعلیم نشده. این بعدش که در مسائل که خود امام تعلیم میکنه، امام هم ایف بس همین من به هم میاد به خاطر ایثار مادرم ایف بس. یکی مادرم رو موزع رو بر بله راست اونم هست وقتی قرار در ما هم بگن این لا تباله ما اوفه این لا تباله ما اوفه این که اما میکنه نسبت کنه به خصوص مادر و پدر حتی اگر مسائل مثل قبیل حد و این چیزا هست این مراعات بیشتری بکنه این شهر خیلصد این دو سال حالا در حکومتی مادر رو گفن کاری که بس دیگه نیست اما این تندی نکنه کتت نزنه شملاق نزنه از این کارا با مادر نکنه نهایت این که با رو حفظ مکنه. تحت نظر داشته باشه کارزه شید رو به کارزه شده این راجعه پس اگر این مطلب درست باشه نتیجه اختلاف ما با مرموی نهایم تو امو قسم این ر ما هم بگیم شاید فهم و عرفی این باشه که مقدم بکنه ولو رسال مخوضه نمی برش ماشه ولو مخوضه نمی برش یعنی فهم و عرفی اینه که اینقدر امر شعره نساز ما در خصوصیت بده که اتا افت اف گفته نشه چرا که به شلاغ و اینا این درجه به این قسمت را اما درجه به قسمت دوم و که مفهوم و باشه مرمون آید اول کلماتی در شیخ خوردن درجه به آیه نبر و تا آرز آیه نبر با تعلیل بعد خود ایشان تمنه حق این است که آیه نبر مفهوم داره و مقدم حاکم با تعلیل این بحث دیگه بحث خاص خودش در محل خودش ترازه انشاءالله این محل خواهد شد از کلم این شبهش از همینه این شبهش اینه که با وجود تعلیل مفهوم منعقض میشه نمیشه شبهش دیگه یک کلمه از جواست اگر با وجود تعلیل مفهوم منعقد شد در تعلیل مقدمه اگر منعقد شد شما میگه خبر عادل قبول بکنه علم بیار یا نه بیار با تعلیل مقدمه من تو سیب و قولان بجال باش مقدمه. پس در حقیقت اخلاف مرحوم نایمی با شیخ یا با کشان دیگر در این نیش که آیا مفهوم مقدمه یا آم اختلاف تو این از مفهوم دار یا نداره و هم از یک زاویه دیگه مشکل و حل میکنه خود دقت ارتکاب کنه اینکه علفان کامیشون زاویه و اصولی حل میکنه هدف ما از این کلمات اون زیرافت هایی است که در روش های علمی بزرگان زبان از سالها سالها هم وجود دارد. ما اینه اگر مفهوم باشه مخفوم مخالف یا اگر مثلا آموزش مطلق باشه مقداری اگر آموزش مندرج باشه تا آرزو اگر باشه مقدمه اینه نقطه احساسی شد. به نظر مرمونایی خوب دقیقه نقطه شید نیست که دازم مفهوم به وضع یا به اطلاع مقدمات هیشن ایشون میگه برای مقدمات هیشن نقطه نکته نیست که اینیست اصولا ایشون یک تصویری دارن از مفهوم تصویریشون اینه مفهوم چه ثابت میشه وقتی که اون قیب به خوف بخن. اگر به موضوع بخورم مطمئن ثابت موشید. نقصه اساسی شید. اینجا همین مثال باید مثال واید روشندتر رو دیگه. سلامونهیه هستان مثال الفرزم. این چند بار این مثال روید. این بحث رو تو باید تو بحث واید مطمئن شد. از در زبان عربی ماید موشید. باید یک زبان فارسی موشید داره. زبان عربی موشید داره. در زبان عرقی مشکل داریم این حدثان به چی میخوره اما این مشکل هر هم دو سوزان فارسی نیست ما در زبان فارسی این عبارت سلام و حتی مثل الف رو دو جون میتونیم ترجمه کنیم سلامت هست حالا مقدم معفیر شد اون شبه غرد سلامت هست تا طلوع پگاه فرش این بیمه اون شب تا طلوع فجر سلامت است. این دو با هم یه اون شب سلامت است تا طلوع اون شب تا طلوع سلامت است. این شما در فارسی فهم مشکلی که عربی فهم نمی‌رسد. اگر گفتیم اون شب تا طلوع سلامت است مفهوم نداره. چون زابطه ای که ای که ای که هم ناییم دهدن چون تا طلوع فرس قید موضوعه یعنی شب تا طلوع فرس اون شب تا طلوع این تاطلو ها توصیف با قول شما این تاطلو طلوع شب وست برای شب اون شب تا طلوع اما حکم شیف نداره سلامت هست سلامت نداره و لذا محکوم نداره <تصفيق> اما گفتید اون شب سلامت از تا سلوه این تا سلوه افر خیلی شد یعنی بعد از سلوه افر دیگه تلاقا نیست و رضا مرمونایینه قدرت الله سرده دائما حرفش اینه, هر اینه. رمز مخهوم برقی میکنید این از که اون غیر به حکم بریاد یا به موضوع این گیدگاه اینشانه این که قیب به حکم برگرده یا به موضوع این دیگه کاری مقدمات حکمت نداره که مثلا نفتی توش نداره اگر کلام به نحری بود که قیب برگرده به موضوع محکوم نداره اگر کلام به نحری بود که قیب برگرده به حکم محکوم داره ولذا مثلا انجاک زیدون فا اکرم ها انجاک اک زیدون قیب آمن این قیل برای چیه؟ این مجیب برای چیه؟ این جاکه قیل برای چیه؟ این قیل برای اکرام که موضوعه مفهوم نداره یعنی اکرام در وقت آمدن زید اکرام اکرام وقت آمدن زید واجبه اینجوری شما معنا میکنی مفهوم نداره اگر اینجور گفت گفت نه وجوده وجوب اکرام در وقت آمدن پس نفی اساسی مفهوم به تعبیر مفهوم ناینیو روشن شد نکته اساسی این است که ما اون خیل رو به موضوع بزنیم یا به حکم بزنیم این دیجیگاهی میشن به نظر شما از روی درسی از روی مقدمات حکمت با این رو به نظر از مقدمات حکمت اثبات کنیم قید برگشت به موضوع یه مفهوم نداره قید برگشت به حکم مفهوم داره تا قید برگشت به حکم مفهوم نداره من توضیحاتششون ایشون صادر کرده یعنی میخواد توضیح بده ببینید متن کلام اصولاً در مسج جامعه شرقیه اون تحلیل کلامی رو زبان شناختی که ما داریم با تغییره روی اکرمه و اکرم این اکرمه در وقت تحلیل یک ماده داره که اکرام یک هی داره که افعل یک موضوع یا متعلق بعضوش موضوع میگن بعضی متعلق که ها باشه اکرمو مثلا اکرم یک هیئت داره یک موضوع داره یک متعلق داره که اسمش اکرام هر کلمه بعضی به ها میگن موضوع بعضیش میگن متعلق, متعلق پس یک حکم داریم که مفاض هیئته یک ماده داریم که متعلق بش میگن یعنی یک ها داریم که متعلق آر متعلقه ها متعلق آر یا موضوع بایدن بهش موضوعه. نمید خب اینا روشن شد این که ما لحظ شرطن که تقریقه یا تغییر آلا هر کسی باشه این به اینه که موضوع این این, این تقبیر این مجیب به کجا کرده این در کجای بارش کجاست رفته توی اکرام که متعلقه یا رفته توی هیئت که وجوده این شهر این آمدن زید اون اگر زید آمد زفت میکن؟ از شیخ ن نقصده که احتمالا به اکرام میکنی نه احتمالا زارن استزار کم به اکرام یعنی مفاد کلام رو میشه اکرامی که در وقت آمدن زیده واجب است اکرامی اگر اینجور شو خب اینجور محکم نداره چون خیلی اکرامه یه جور دیگر میشه معناکن اکرام زید معلل است به آمدن به وجوب اکرام زید وجوب وجوب این رابطه به هیئت و متعلق این وجود به این حیعت این است به متعلق تعلق میگیره که اکرام باشه لکن با اون قید با قید مجید مجید در حقیقت میخوره به بین حکم و بین متعلق تعبیر بیر بعضی موضوع تو بعضی اکرام رو موضوع میگم بعضی ها رو موضوع میگم برای اینکه که اشتباه نشه من هم نایینی به اکرام میگه متعلق به ها میگه متعلق های متعلق این صافتر این اصطلاح متعلق و متعلق بلکه اشتباه نشه پس من رو اونایی دقیقه زراسط کار ایشون میگه مفهوم نکته، مفهوم اینه نظر شیخ مثلا اشاره چی بود میگفت مفهوم وقتی منعقد میشه که چیزی دیگری در کلام نباشه اگر چیز دیگری آمد این نمیگذاره مفهوم منعقد بشه حوضی احتلام شد مثلا تو آیه نظر این جا اکن به نظر این اگر محقوم داشت محقوم نیست که آدل خبرش تباییون نمیخواد خب این درست چه بکنی محقوم منعقد لکه این مفهوم این محقوم میشه که مقدماتون اکمت جاری باشه تو مقام بیان از اون مرگوه انتصیب و قومن به جهال اکن فتوس رو ها الان ما فعلت هم نازمی خب اسابت القلم بجاهل تو خبر عادل میشه چرا؟ اسابت القلم بجاهل تو خبر عادل هم میشه پس در نتیجه آیه مخدوم نداره چرا؟ چون سر مخدوم برای این ما بدانیم که این به اصطلاح شده حالا من مثال دیگه براتون بزنم اگر گفت اینجا که زیدون فکر رو گفت این مخدوم داره مخدوم میشه که این لغجه ای که خلاص شد یعنی که مفهوم داره؟ یعنی مجی علت و سبب منحر برای وجود اکرام چیزی دیگری جای مجی قرار نمیگیره. آمدن علت وجود اکرام از این شو خونه دیدن تو این علت چیه؟ علت دیگر نداره. درست شد؟ حالا اگر آم آمد گفت اکمل علماء، اکمل هاشی یعنی عالم بودنی که از اسباب اکرامه آلم بودن اونم علت اکرام اشکال اینه اصل اشکال این بود دیگه اینجا اکزیدون فاکرمو وقتی محکوم داره که مرادش این باشه مفادش این باشه فقط مجی فقط مجی علت اکرام فقط نیامد اکرامش نیامد اصل مول یا آلم بودن علت اکرام یعنی اگر نیامد دیدن شما نیامد اما آلم اکرام قصموشی، مشکل... متوجه شد تا آرزو آم با مفهوم مشکلش اینه شما باید با مقدمات حکمت ثابت بکنید این علت منحصر این انحصار علت رو ثابت بکنی. آم که آمدجوری این کار رو می‌گیویم. چون انحصار که ثابت میشه تو مقام بیان باشه، قاعده مستثن قد نباشه، نسخ غریب نکنه. خب نسخ غریب نکنه، نسخ غریب نکنه که گویا کل عالم استغاید نکنه. نکتی اشکال چیه؟ پس نکتی اشکال این است که با آمدن آ، آم دیگه ما نمیتوانیم مفهوم اثبات بکنیم چرا؟ چون آمدن آم میگه یه چیز دیگه جای اون علت میشینه جای اون قید میشینه مرحولانی چی مخاد بگنیم رو دقیق میگه میگن نفته را حتی آمم باشه باز مفهوم مقدمه چون نکته دلالت بر مفهوم این نکته نیست که چیزی جریان می‌کنه میشه نکتهش این نیست نکتهش این اینه یک نکته که به خود کلام برمیگرده خب دقت آیا این من معنمای این مسئله خطرمندم آیا ثبوت مفهوم به خود کلام برمیگرده یا ثبوت مفهوم متوقف است که کلام دیگری نباشه اون تصور میگه ثبوت مفهوم وسطی اتفاقا کلام دیگری ای نباشه اینجا که زیدون تاکیدمو این متفق پس کلام دیگری نباشه است اکرام اگر کلام دیگری آمد دیگه مفهوم منقصد نمیشه من میگم شماش نقطه میگه نظر دلالت اقاد اقاده مفهو تابع خود کلامه رابطه به کلام دیگه نداره زاویه بحث ولذا نایمی و لذا مروه ناهی این مساله رو قاضی وصولی حل کرد خیلی راحت اون نقطه فنی دیدگاه ناهی روشن شد اون نکته فنی دیدگاه ناهی اینه که ناهی می‌خواد بگه کلام به نفسه برای خودش مفهوم منتقل میشه منتظر کلام دیگه نیست چرا چرای این نکته شون میگی ایشون نقطه محکوم اینه که قید و حکم باشه یا قید و باشه این رفت به کلام دیگه نداره این نه میگم آقای این نقطه نیست این نقطه نیست؟ این نقطه که قید و حکم یا موضو ایمان خودش کلمه به نه زرافت کار من مثلا مثلا کلام نهانه رو خواهم چون هدف من توی این بحثا اون نقطه فنی و زرافته پس بنابراین اگر شما گفتید این اقاض محوم متوقف بر کلام دیگری ناید این نقطهش اینه دیگی. این اقاض مفهوم متوقف بر کلام دیگری نیست این اقاض محوم متوقف بر یک نقطه این جوایش تیزه به مغد می‌خوره، به مساله میخوره یا این جوایش تیزه حیات اکثر می‌خوره، حیات اکثر. به نکته کمی بود. این وقتی به کلام دیگری نزدیک کلام یه نکته ای که انبات سوهر اکنامه فی نصب درست میکنه باشه. مراز مرمون نایین روشن بشه بعده باشه خب آمانه از اونا هم, هم نمیگن شیخ هم, هم, هم چون تعلیل آمده این تعلیلی از سحن قریبیه مشتل بشه انحاوات میشه. نایین از کردم در تجربات مرمون نایین این تقریب رو میگن می کنی ولی میگه برسید رفیق که اندازه‌خودم کلام خودشون رو بهتر از خودشون میشه یعنی اون ظرافت نقطه اینه ان ایجاد مفهوم متوقف بر کلام دیگه خب آم جلوه میگیره ایجاد مفهوم نمیشه منظور من اینه که نه این ایجاد مفهوم متولد بلکه خود کلام قینرته مفهوم برات منقلب میشه میلات چیه میلات میگه که خیلی برگرده به موضوعه به خب مثلا اگه گفتم آخرین برابر قرآن خود شیخو درباره درس موضوعیه شما گفتن. شیخ رونی اینا شیخ مثلا که برمیه به اکرام در خلاف دیگران حقوق ما اونجا بحثیم بعد امکان داره ما به اکرام برگرده اما عرض نمی‌فهم بهای عزام یعنی اینا نه میدونمش نه رسیدین استظهار و اورجی رو به بحث نباشید اورجی نمی‌فهمم اجارهک زیتون دادن کردی اون شو وجوب معلمه اگر وجوب معلمتون مفهوم داره ما کلام دیدهی باشه در باشه اگر اکرام معلمتون مفهوم نداره مفهوم مثلا ببینید ما در قرآن این ما در عربی اینطور میگیم قرآن بخون از سوره آل امران تا سوره حج این در عربی یه مشکل داره در فارسی مشکل نداره یه دفعه میگیم از سوره آل امران تا سوره حج بخوام ببینید تا این تا به موضوع بر میگنه از اینجا مفهوم نداره ایش میگه مفهوم نداره یه درسته میگه بخوان از سوره آل امران بخان تا سوره حجم این تا رو بعد از بخوان میاریم پس خیلی دید که در کلام میاد، مبنا روشن شو. هرگاه به استظهارات و برگشت موضوع مفهوم نمیشه هرگاه برگشت به حرف مفهوم منعرز. در زمان فارسی و انجاوی واژه بغض ام بعد لو لا عرب و بزات کیفا کلیه مفهوم قابل همون مثال سلامیت هم مثال دو شما یه این اینجوریه سوره آل امران تا سوره حج را بخونید <تصفيق> واقعی که در واقع خودشی هم آقای واقعی نه دیگه یه ارکی خود کلام کاری به نداره خب البته بحث تمام شد یه حالا ترجا روشن شد کلام مرمونه این زرافت کلام این میشه اینشون بحث اصولی کرد ما صاحبه اوز حساب می اگه اون بحث اصولی مفهوم موافقه را یک رابطه نشه مفهوم مخالفته را رابطه دیگه ای باشه